دلسه دوزده از رسول استاد چهاری مواده نمیدون و این رو برای تشکیس شما مظاهر عدله در مقام اثباتی تشخیص میدیم با این عدله آیا این موضوعی یا موضوعی طریقیه یا کشکیه زهر منو اعتبار و صفت به ممنوع من لم یه اماما محلوب بیرون کمایت آخرتنا انشاره حفظ عدد ذکعات عدد صناعیه از دبا و الصناعية، و من و این نقیرهو که از زن به عهد ترقین در نماز او اصالت عدم زاید بنابرای اوچیتش بنابرای مبنای بعضی ها و عموم آمنه لایب عموم مقامه و فاتین که اینا از از این و محفوظ این که در نفسده کار و این ها می خواهیم. این ها خودی زن به اهلو طرفی از امیزاید این ها با این قطع صفتی نمیتونه باشن الا به دلیل خاص خارجی مگر ای دلیل خارجی این دلیل خاص خارجی بیا اینها رو با این مقام قطع محیری صفتی بگونه تاورد که با از و حکومت با گفته این. باب حکومت و حدود اشکال نمید که از در حکومت و حدود اشاره میتونو توصیح بده گفته بود علم هایت خاشه برنن توصیح هر این باب حکومت و حدود همه اینه مشکلات هم ده الا به دلیل خاص خارجی یه دلیل خاصی میخون خب اینکه ادله که عدله مطلق در نماز یا عدله اصالت عدم زاهر خب خود دلیل میشه چرا دلیل خواست خارجی این رو نظر مستند بینه که عدله اوچیت در نماز و عدله اوچیت اصالت عدم زاهر نسبت به طریقیت اینها مفیده و نسبت به اینها موضوعی وصفی باشند باخره لذاعت دلیلیت زن در نماز میتونه زن رو با این مقام علم صفتی بکنه علم موضوعی بکنه در حیث کاشفیت و طریقیتش ولی که مفروض که اون علم موضوعی صفتیه از یک دلیل خیلید از دلیل موضوعیت مختبه در نماز میخونه اون کفایت نمی کنه الا به دلیل خواستن خارجیه غیر عدل در اوتیت مختلف زن فسرات و اصحالت عدم بکزنی یعنی خود تعمیلشون به درست نیم خوره که بگیم این عدلت ادارت بکنه برای مقام قطع موضوعی سفتی هم. خود دلیل اعتبار زن در نماز مفید نیست و کافی نیست بقیه دلیل خاص خارجی میخواد بخواده که اون عدل اوتیت خودشون در مقام اثبات اوتیت برای زن در نماز یا در مقام اثبات اولیّت برای اصل اصالت عدم زائد و تنها چیزی که میتونه اثبات کنه تعلیقیت اینه و وسیبی بودن اینها نمیتونه اثبات کنه به عبارت دیگران به عبارت دیگر اولیّت مطلق از آن و اصالت عدم زائد جزء قواعد عقلاوی و نوع بواعد او بلایی تنها چیزی که میتونه اثبات کنن طریقیت طریقیت رو میتونن اثبات ولی قطع موضوعی وزفی تأخد مخزه بنابراین این عدله او مثل نصف عدله حجیت زن در نماز یا اصالت هزن زائر به درد اثبات تأخد نمیتونه اگر ما فرضمون این باشه که قطع معفوض در رکعات قط موضوعی زفتیه یعنی یک امر و امور تأخدیه با قواعد و قلایی قابل اتباه نیست این بهتر از اون تقریبی که در شروع و هواشی آوردن که بیان بگن عدد اونسیت مطلق زن در نماز اون طریقیت اثبات میکنه. و ما میخوایم موضوع صفویر اثبات کنیم و برای عنوان مقامین بشل من در پاس این تقریب بهتر از اون تره بنابراین دو تا تعریف میشه براش دی کرد. یک تقریب هم تروی در شروع اومده در حواشی اومده که ادله از مطلقق زن در نماز و اینایات که داره ای بیشتر باید از حالت عدم ضاه با اون قواعد و عدلله که داره. اونها اصبات می کنه اینه مقام این قصد در حیث طریقیت ولی در حیث موضوعی وسی اینکه اینکه اینه اصفت خاصی مثل قط باشن اون اصبات نمی کنه و از خارجی میکنه. این یک تقریب تقریب دوم بهتر از اینه تقریب دوگم اینه که در هر موردی از احکام شرق قط قدر مفروض موضوعی وصفی باشه یعنی به نظر شما این موضوعی وصفیه عقص قد به عنوان موضوعی وظفی یک عمر تأخذیه و امور تأخذیه با قواعد اوبلایی قابل اصلاح است و از حالت عدم زائد و اوبلایی شرعی که نیست از عدم زائد اوبلایی محضوره یا آید کونی که شرعی باشه شرعی باشه باشه یعنی که شرعی محض نمیدونه یا میگه مال باب صلاح تو دروابطه با اینکه زن نبرمه ولی قاهده قاهده ارتکازیه ارتکاز به اینکه همیشه به زنون نبرمیشه وقتی ما علم جزمی نداریم به زن نبرمی کنیم قاهده ارتکازیه مثل قاهده تجاوز مثل قاهده فرا مثل خود استثاب خب همه دارم میگه اینا هم اقلائی هم شبیه ولو در استثاب رکیم که اقلائی نیست اقلائیش موقع نقض یقین به شکل اینها ندارن. بنابرای یقین ثابت نمیزارن ابدا اینطور نیست حالا بیان بگه اوالا اینطور حتی حیوانات هم اینطور هم مزرپایی که هم هم وقتی هماری از خونه میره به شراب و برمیگرده استصاف میکنه برمیگرده اینطوری نیست خودم از اشاره گفته این هو در صورتی برای شما منجهذ میشه که علم پیدا کنید. تمامه ببین اینا اصول مسلمه مفروضه علم موضوعی سفای تعقل محنی. به این اوقلا چ دا نیست؟ یا می بگن اگر ضاعلما تا به عدالت زیدن مثلا اقداکنم سالاله به این اوقلا قطع موضوعی صفتی نداریم بنابرای تحبودم هست شده اصولم مسلمه سنده ما هست شهر همون رو گفتن که حوض تو شده دیگه کل ما حکم و به اقل حکم و اون محدوده داره اون محدوده داره هیچ ارتباط به اقام ما نداره ثانیا اون اقل بگه بعد اون مقام اشتحال میخواد بگیر خیلی بحث در از را پیش هست حالا من حیث و مجموعی که داریم بگیم بهتره یعنی بریانش بهتره قطع موضوعی وصفی تعبد محضه تعبد محض دلیل خاص میخواد و و اوتییت زنه در نماز و عدله اصالت عدم زاید جوز عدله عامه عدله عامه یعنی چی؟ یعنی ارتکازی اینا نه علنده اقلائی هم اختصاص به شهر نداره اللهم به دلیل خاص خارجی غیر عدلدت توجیه حتییت مطلب ازدن نفس و اصالت عدم نکسر و من هم دون توجیه برای شده کردیم میگم اونه که در شرح های اعتمادی هم اومده و یکی هم که الان گفتم و منها زلباب و منها زلباب عدم و جواز اداع شهادت این دل حاکم شرعی استنادن الال بیانت اولیت علا قول یعنی از همین بابه که نمیشه انسان شهادت رو ادا کنه با استناد به بیانه یا استناد به یه ما بیان بگیم بیانه برا من خبر آورده که زید ساره پس منم برم شهادت بدم به ساره بودن امرو یا اینکه شهادت بدم که این زید مستولی بر این مال ید داره بر این مال و این قاعده ید دلیل بشه اینکه من بدم شهادت بدم که این خونه مال زیده و ملک زیده اینو میگن نه این و من الباب عدم و جواز اداع شهاده استنادن الالبینه اولیت علا قول بنابراین قول که قائل شدن به اینکه که شهادت ان علمه فقط باید باشه شهادت با حدث و دمان و عمارب و بیانه درست نیست انسان خودش اگه دیده باشه علم وجدانی داشته باشه میتونه شهادت بده و اینجازه تعویل و شاهد فی عمل نفسهی به ما اجمعن یعنی ولی خود شخصی که میخواد شهادت بده گوش شهادتش جایز نیست ولی در عمل خودش میتونه عمل بکنه یا نمیتونه عمل بکنه این چیزی که در دست زیده میتونم بخرم یا نمیتونم بخرم میتونه بخرم ولی میتونم شهادت بدم ملک زیده نمیتونه شهادت بدم پس میتونی بخری عنوانی که ملک زیده ولی نمیتونی شهادت بدی بین مقام شهادت و مقام شرا فرقه. چرا؟ فرقش این که در مقام شهادت قطع موضوعی صفتی میخوای خود باید علم وجدانی لدومی داشته باشی و نمیشه اعتماد کنه به قرائن، به امارات به بینه ولی در مقام شراب میشه اعتماد کرد قطع موضوعی طریقیه یه میشه اعتماد کرد به بینه به اماره و به قوائد دیگه اشکال نده مثل قایده این پس بین مقام عمل خودم و مقام شهادت فرقه حالا فرقه چیه؟ یک فرقی در این کتاب گفته میخونیم یه فرق خیلی جوهری و فنی اینه که بین مقام شهادت و مقام عمل فرقه بخواهد اینکه مقام عمل مقام مخاسمه که نیست هیچ تخواهد هیست طرف مقابل ندوم. من میخوام برم از بازار چیزی بخرم بیام. میره میخره میان و الای بخواهد اعتماد من باشه ما قامل مسلمین نه سو بازار به هم میخونن چی میدونم کرده یا خریده چیه من چی میدونم بازاری دیگه مستقر نمیشه بازار به هم میخونن ولی یه موقع میخوند انسان شهادت بده به اینکه این ملک زیده و زید مالک این ماله اینو نمیدونه فرقش چیه فرقش اینه که در مقام شهادت یک خصومتی هست یه تخاصمیه ما باید برای دیگری اثبات کنه دیگری باید خانه بشه یعنی ما علم رو برای دیگران خوایم طرف مقابل ما باید خانه بشه قاضی باید خانه بشه نه خود ما در مقام خرید خود ما میخواییم قانه بشیم خب علم نفسانی خودمون کافیه ولی در مقام عدای شهادت اینطور نیست خودشت برای دیگری میخواییم برا دیگری باید دلیل باشه علم وجدانی من دلیل برای شما نمیشه ولی بلگینه برای شما دلیله از اینطور نیست که علم وجدانی تر از علم بلگینه باشه اتفاقا به بخاطر ینک علم وجدانی به درد خودم میخوره به درد شما نمیخوره بیا بگیم قاضی خودش علم داره بخاطر ینه علم لدمنی داره به اینکه این شخص طارقه علم به درد خودش میخوره حجیت برا خودش نه حجیت برا ما و به عبار از این سالسه حجت علاق اسمه. یک حجت عقلی داریم که علم وجدانی برا خود انسان و یک حجیت اقلائی داریم مثل بیینه مثل امارات و قواره در مقام شهاده ما منجز اقلائی می ما حجیت اقلائی می چیز که اغلا رو قانه کن. اون مقام تخاصم رو مرتفعیش کنه این پرونده رو مخصومش کنه ولی علم نفسانی من به درد زد نمیخوره اگر بنا بود علم من حجت باشه ما دیگه دعوا هوا داشتیم ما شکایت بازی نبود و پروندهی نبود و خصومتی نبود چون علم من قبول ندارن و حجت رو قلایی ساخنه میشه میتونه بره شکایت کنه و بیانه بخواد و امسال اینها پس در مقام قضا ما یک منطقیز اغلایی میخوایم، یک حجت اغلایی میخوایم، نه حجت نفسانی نه حجت عقلی چیزی باید باشه دیگران اونو حجت بدونن علم قاضی رو غیر خودش حجت نمیدون ولی این بیانه رو همه حجت میدون اگه با قائم بشه همه قبول میکنن حسومت میشه بنابراین علم وجدانی تو قوی تر باشه ما کار به ذاتش نداریم در مقام علم وجدانی و علم غیر وجدانی مهم اون اثر یکی برد این ها میشه اثر علم غیر وجدانی قوی تر از اثر علم وجدانی بنابراین در مقام شهادت ما علم خودمون به درد ما علم دیگری باید باشه تا رفع خصومت کنه ولی در مقام از خرید من میخوام چیزیو بخرم چه رفتی به زید داره چرا رفتی به داره من خودم میخوام قانه باشم و قانه برای خودم حجت هست که قاعده داره این شخص ظاهرا مالکه و همین مالکیت ظاهری برای من کافیه ولی در مقام شهادت اینطور نیست حتما باید از راه بیانه و اماره و قاعده باشه من را مگه در مقام شهادت نه. نه ببین علم وصفی به این معنی که من علم وجدانی پیدا کنم نمیشه یعنی تنها این نیست مهم چیزیه که برای دیگری حجت باشه حالا بیانه که دو نفر که میاد شهادت میده اونا علم در دونه بوده ولی مهم که در مقام شهادت علم علم وجدانی دیگه نیست علم غیر در مقام شهادت علم غیر رو میخوایم نه علم خودمون رو نه نه استفاده حالا من الان اینطور دادم میگم خب چرا به خاطر اینکه اینو validate کنیم هم عباراتی من به بگه یعنی تعبیر مصداق هم باید همین باشه اختلاف ادای شهادت استناداً الا چرا علم بحثی من ها در و مقام شهادت با هم یک نه, نه. ببین بین علم وجدانی و علم غیر وجدانی میخوام بگم این چطوری میشه حلش کرد در مقام تفسیر بین مقام شراب و مقام شهادت در مقام شهادت علم غیر باید باشه تا دیگری قانه بشه طرف مخاسم من باید راضی بشه علم وجدانی من دلز نمیخوره ولی در مقام مشرا خودم میخوام و باشم این تنها را حله غیر این باشه پس میشه میشه در مقام ادای شهادت و مده منهازل باب عدم و جواز ادای شهادت استنادن البینه بعد پس چرا مشهور فتاوا ها بر خلافین. الان اینشون داره میگه منهازل باب عدم, عدم و جواز ادای شهادت استنادن البینته اولیت علا قول جری جوریکا بهش که برخلاف اینه خطاب برخلاف اینه علم باشه <تصفيق> حالا همون از رعایت کرده همون هم قبول نداره <تصفيق> اون خاطر همین یعنی در هواشی خیلی از ارا معاصرین هم همه دارن بر اینکه ما موردی پیدا نکردیم که قطع ماخوذ در ادب موضوعی صفتی باشه ما برای پیدا نکردیم به خاطر همین پس برای هر مشکل مهم اینه که ما تقسیم دونم علم رو به علم خودمون و علم دیگری در مقام شرا علم خودمون کافیه در مقام شهادت علم خودمون به درد نمیخوره علم غیر رو میخوایم. تا ای جن ای این وقت انما بین بينكم بالايمان والبينه اي مقام یعنی مقام فضا این مقام فضا خودش نمیتونه همون که شهادت به مالکیت زیک به خاطر که آره آره اشکال نداره بر همینه نظر مخالف دیگه نه بر حلش یعنی حل عبارت رو گفتم میشه به له دومی حلش کرد حالا یه شبهی در ذهن نمونه که علم دو قسم علم خودمون علم غیر در مقام مخاصبه علم غیر باید باشه علم خودم به درست نمیخوره و شخصی که ببین شخص متهم شخص علم دارم ولی به درست نمیخوره هم دوز علم داره همون مالباقصه علم داره به درست نمیخوره ما علم غیر رو دلگی باشه اماره باشه قاعده باشه به هرچی باشه وجدان اصلا نمیشه به علم وجدانی به علم وجدانی در محکمه نمیشه حکم کرد بازی ما داریم همینه میگیم میگیم رسائل با فقه ما خیلی فاصله داره ایشون قاعد کنه بینیم که عدم جواز ادای شهادت استنادن الان بینه خب فتوا که برخلاق اینه یعنی طرف این بینه هر دو این داره هم شارق علم داره وجدان دیده هم مال علم داره پس چرا درس نمی حتما حتماً وسیینه باشه خب علم وجدان دست درس نمی خوره در مقام ادایشه باید باشه الان کردم بگره بر من حالا ملکیت اومده اما بر من علم حاصل نکرده ها. الان میگم یه بحث دومیه این علمی که دارم میگن ماهیتش الان میگم حالا این معلوم شد این علم غیر میخوایم. در مقام عدای شهادت علم غیر به درست میخوره علم خودم به درست نمیخوره با اون خواهد میگن قاضی جاهلون بینن جاهلیه بین دو عالم. هر دو آلمن برخلاف علمشون میخوان مستقی باشن مستقمن ولی جاهل یعنی قاضی جاهل بین دو تا آلمین معزالک حکم قاضی نافذه پس نمیشه علم وجدانی رو قوی تر از علم بیانه ای بتونه واقعیت ها رو چرا این کار کنیم حالا بیان بگیم نه وسایل اینطور میخواه وسایل داره میگه فتواه برخلافشه مقام قضاوت برخلافشه خوب این رو ما باید بگیم دیگیم و الاس هر جمعه مشکلی نداره بیان بگیم بابا در مقام عدای شهادت علم وجدانی میخواه خب اگه علم وجدانی میخوای چرا بیانه میخواه بعدی نه دیگه شاهد از کجا بوده ما چی میدونیم ما چی میتونیم ما میدونیم چی می نهایت چیزی که در میخوایم میخوام نه نواقعی ما چی میدونیم راست میگه یا دروغ میگه این حرفا نه بدین <تصفح> نرا یه وقت میگه در تمام موارد در کره دماغ خوندی استناد من به علم ولدنی خودم باشه یا استناد من در مقام شهادت به بیلی باشی که به من داده بود اشکال نداره شهادت یا ازن من... پس... من... بایدنه... زنای... اینه که من دارم میگم سریان داره در تمام خروعات بزایی جمعه... در مقام زنا همینطور طرف این علم دارم به زنای خودشون حتی حق اعتراف ندارم، و اگر چهار نفر یعنی علم غیر قیل. علم غیری باشه ببین، مهم این نیست که شخص اومده چهار نفر این زنا رو دیده این دیدن مال رو خودش برای قاضی علم قیری اگر این بینه اولیه گفت من وقت ندارم برای ادای شهادت، این چهار نفر از ما وقت نداریم داریم آزم عمره ایم به چهار نفر دیگه بگن بیان شهادت بدن باز اشغال پس استناد به علم غیره. استناد علم غیره. مهم اینه که علم علاقمسمه. علم خودم به علم دیگری. در مقام شهادت علم دیگری لازم الان شما اما من علم میتونید الان دادگاه به شهادت به حالتی در خود هم اموری در روایات شهادت اختلاف در این بود که در محسوس بودن قرشی یا در معلوم بودنش حسی باشه یا غیر حسی باشه فتاوای مشهور اقوال مشهور همش داخل مدار اینه که باید حسی باشه بنابر روایات رو چین چطوری توجیهش میکن روایات که همه در یک نطق نمیشه اختلاف دارن مجبورن رفعیت کنن چیزی که در اصول میگن حتما این مطلب اول، مطلب دوم که شاید این اشکال از اساس برداره اینه که یکی از شرایط منجزیت یعنی یکی از مراتب حکم تن از جز حکم که قبلن گفتیم تن جز حکم مشروط به چیه؟ اختلاف الاحلام علا قوله این خیلی مهمه اختلاف بر دوتا قوله شرط تن جز حکم چیه؟ مشهور قائلا میگه شرط تمدذ حکم علم و یقینا کذب متيقن علم علم وشتنی. یعنی علم خودم قوی نوع علم علم دیگران علم ضعیف و نازلیه این مبنای مشهور و در کلماتشون هم هست دیبی شرط تمدذ حکم رو علم میدونند اول تو که دوره سابقه هم گفتیم که تر از قول مشغوله اینه که شرط تندجز و حکم وصوله و قلوعه همین که این روایات به من برسیم همین که به من ادلاق میشه میخواد من علم پیدا بکنم الان خیلی از شبه ها تو شما در ایتی کلام نگاه کنید میگن آقا ما علم نداریم که از من باید تقلید کنیم من به یقین نرسیدم یقین نمیخواد ما از نه علم روایات به شما رسیدی یا نرسید. این احوام رو بالای منبر به شما خوندن یا نخوندن مهم بلوغ وصوله نه علم نخواهد علم پیدا بشه؟ نخواهد علم پیدا نشه هیچ نوعش ولله الهجت به این نهایت هر و قرآن زده چیزی که هست اینی که هجت باید بالغه باشه. هجت شرعی به من برسه بلوغه اصلا این مطرح نیست. ما چرا بیایم قصر و زن و شک رو معنا کنیم چرا اینطوری تذکیستش کنیم چرا بحثات رو به هم پیچیدهش کنیم مهم نه که اینها رو برا ما خوندن و احکام مسافر رو برای مسافر خوندن و شنیده میخواد علم پیدا بکنه میخواد این پیدا خود تمام میشه احکام سلات رو براش خوندن احکام سم براش خوندن احکام تجارت رو برای بازاری ها خوندن همه اینها به اینها دستیده میخواد جز پیدا بکنه میخواد جز پیدا نکنه اسان علم مطرح نیست که بعدا بیان بگیم آقا شارع برای ادعا کردن خب یکی علم وجدانی بوده خب علم وجدانی که ما نداریم یا عوام ناز مقلدین علم وجدانی که نداریم این علمشون علمش غیر وجدانیه علم دیگران علم مشتبه بعد نوبت میرسه به زنون باید به زنون عمل بکنن ولا تکو مالکی به خب بهی علم و اینو هر مشتبهی باید توضیح کنیم آیه یکی میگه ان الظن یغنی من الحق چیزیه ظن اصلا حقیقت نداره بیام این زون معتبره بنابرا اصول ما با قرآن ما نمی سایم. قرآن فقط کتاب تفسییک نیست؟ قرآن همه چیز ما، همه چیز درنش هست. زن و گفته طبیت نکن فقط از علمطبیت ها زننم با حقیق در دو چیه. هیچ حقیقی نکن و زونون معتبر غیل معتبره نه ک ها بعدا در باب امارات احلام وارد شدن گفتن آقا شاره امارات را حجت کرد، بینه را حجت کرد این معدای امارات اومده جعلش کرده جعل حکم مماسر کرده تاریخیت داده، علمیت داده نمیدونم از این طرقه که ذکر شده و ناینه خیلی آبتاب به حال داده و شهیست هم آورده و دیگران هم وایلن های واقعیت دارین هم شهار اومده گفته واحد 70 درصد من 100 درصد کردم یاره کجا گفته بنابراین هم تخیله عالم تخیله روایات با علم وجدانی هیچ فرقی چرا به خاطر شرط شرق احکام بروقه روایات و سایدشیه به ما رسید یا نرسیده تمام دعوانده رو طرف از موارد هست دیگه در یکی از مباحث هایت بحثینه که اگر دلیل عقلی همون نمو وجدان بر خلاف روایت باشه باید مقصم کنیم. یعنی یعنی حقیقت پیدا قضیه کافیه نماز بگین خلاص میتونه نیست. پس نخرونه. مثلا گفتیت ذاتی نداره مشهور میگن این که قد پیدا کرده که مسیحیت خوبه میشه قبول کنیم از پس خود چیهت قد خود یاده که قد پیدا کرده که روزه نگیره این که قد پیدا کرده که این درست نیست اون اعتقاد لازم نیست این اون ما اونچهتی مگه اونچهتی نمیگن ذاتیه پس بگن اونچهتی دیگه پس این اشعار بافیهشون گیره درست نیز. مهم بلوغه بعد از بلوغ کسی حجتی نداره روایات وقتی به فرق این میرسه دیگه حجت تمام دیگه مهم بلوغه و حصوله همین که روایات به ما برس و بعدا تفتیه که بین علم وجدانی و علم امارات اون 70 درصده و این 99 درصده و اون دیگه 60 درصده رو مگه ما حساب ریاضیات داریم میخونده این ها چیهن؟ طلبه ها رو گم کنیم تو این موارد آخرش از حقیقت سر در نیارن صرف وصولش خودشت رو تمام کنیم بخواد که ما این به وجدانی پیدا کنیم به پیدا نکنیم در مقام شهادت برای اینکه علم به من بعضی از موارد نفسده میاره و علم به وجدانی دارم به ذنا. برای اینکه مقصده نیاره برای خود من بده برای حیثیت این دو نفر بده برای جامعه بده شاره گفته علم خود توتریت نداره علمی باید باشه از طریق خاصی چهار نفر من از کجا پیدا کنم پیدا نمیشه به این سو دیاره بنابراین آوری اونا محفوظه توبه میکنن این شخص هم راحت اون یکی هم راحت یا من آرام پس هیچ مدهار باید درمیگره خیلی از موارد خودشیت نداره من اثبات پیدا کنم به یک عقیله باطل. خودشیت نداره اعتباط پیدا کنم به عدم وجوب در موارد وجوب عدم حرمت در موارد حرمت اعتباط پیدا کرده علم وجدانی پیدا کرده آیا لازم الاتباعه یا حرامه یقینا حرام اتباعش پس امارات ما مافوق قصر وجدانی ماست این نیست که این هفتاد درصد و شست درصد باشه و بعد اینا رو شارو مده باشه یک همایشی بگیره و امارات رو برسد در تدش کنه یا بیا در اینها جعل معطا بکنه جعل علمیت بکنه جعل طریقیت بکنه منسیزیت در اینها جعل کنه اینها همه های عقیم حوزه ها با واقعیت خیلی فاصله داره شایدم خیلی خوب باشه ما بیاید بگیم آقا در باب جعل امارات هشت قوله هشت قول حداقل هشت روز وقت میبره و این اثبات هیچی اثبات مکنه اثبات علمیت ما رو که میکنه که ما هشت تا قول بلد اینجا. ولی خب عمر طلبه ها چی میشه طلبه میخواست فکر کنه نهایت چیزی که انسان بهش میرسه اینه که خدشتی که بین ما و خدا هست وصول و گلوه البدینه یو بدلقون رسالات الله اصلا این مطمئنه شما یه طوری بگیدی که برای مردم علم حاصل بشه و حاصل بشه مفاد نشه به درک مهم اینه که ما بالای ممبر بگیم آقا ارتباط زن و مرد مطلقا حرام به هر نهری باشه مهم اینه اینه بشنون در تلویزیون اومده بود بحث میکرد که قدیم یه طوری بود که برای اینکه زن با مرد رو نشه دو تا کوبه در بود یک کوبه مخصوص بود یک کوبه نازوشتر مال زن بود اگه زن اومده پشت در اون کوبه رو به زن زن بره در باز کنه رو نشن بعد اینه که داشتم بحث میکردن موجی زن با مرد این یعنی این ما رو هدف گرفتن ما رو مسخره کردن واقعیت هاقی از اینه. وقتی این ما بالایی بالای منبر بگیم ارتباط به هر نحنی باشه، میخواد در فیلم باشه میخواد در تاس باشه میخواد در مهمانی باشه عروسی باشه جامت و زهرا باشه حوضه باشه. هر کجا باشه؟ مطق حرامه کسی نمی توییزش تر... کنه ترخیصش کنه بیا با ب هم تصی نداره چیکار بش داره اون چیزی که حرامه ظاهر شراممه. جامعه رو ممنتذش کردیم. تو نونوائی های قوم دختر اومده نون در میاریم تو سر ما شد حالا تهران هم باشیم میگیم این ها اروپاست ولی قوم هم اینطوری شده. تو هر مغازه فروشگاهی میرین دختر اومده اینا ابتزار نیست بنابراین اینا علم ندارن علم دارن ولی علمشون درد خودشون میخورن نهایت چیزی که میخوان بلو برد مهم که ما به اینها باید بگیم خودشت خدا تمام میشه با ابلاغ با وصول میخواد این پیدا کنه؟ میخواد این پیدا نکنه پس ما چیزی بالاتر از قلوب و تبلیغ و وصول نداریم ببین اون یه بخصیه اگه خواستید امیغم بخصی کنه زن وجود خارجی نداره. به خاطی که مردد بین 70% و 30%ه ول مردد لا وجود له و لا مانیه یعنی در صوق نفس من نمید. من به هر چیزی ما خیاد میکنیم زنداریم اون معلوم ماست منطقه اون معلومه به ذات من هفتاد در احتمال مطابقتش با معلوم بالعرضه یعنی اون واقع خارجیه بنابراین مزنون اصلا در صوق نفس قرار نمیگیره چون مردده شیع مردد وجود نداره وقتی وجود نداره بیان بگیم من زنده به این حکم دارم نه اون مقام اعتماده من به خبر فاسق اعتماد ندارم و الا چیزی که گفت برای ما معلوم شد ما علم حاصل میکنیم همه اینها نیاز به بررسی داره با تعمل نهایت چیزی که اصولی میخواد و فقیش میخواد وصول و خلوگه علم وجدانی ضعیفتر از علم غیر وجدانی برعکس اون چیزی که مشهور دارم میگه مشهور میگن علم وجدانی قوی تره اگر تعریف و و علم وجدانی ذاتیه پس اگر شخصی علم وجدانی کرد پیدا کرد به اینکه باید مسیحی باشه نمیتونه تعرض بشه اگر علم وجدانی پیدا کرد به اینکه نماز صبح نباید با جه خوند الان این همه شبهات به خاطر همین مبانی ماست مبانی ما این شبهات رو درست کرده و اگر بیایم بگیم این حرفا نیست علم وجدانی ضعیبتره به خاطر اینکه که بین خودت و خدای خودت برای دیگران هم نداره و قابل نیست نیستشن نه اصول باید بخونی ولی به این که دارم میگن باید بخونی و ایلا اونا اگه اخباری میکنن بر میدارم میگن و سایل بخونی دونه بیدارم. کافی بخونید، اونا کسا نیمیفهمه چی دارم میخونن یه منطقی برای روایت روای ما روایات رو بخونیم سواد میخواد الان اصول کافی رو ملاست را کرده اگر اون ثوات رو نداشت اون شرح رو نمیتونست بنمیزه علم میخواد و تمام علوم مجمعشون اصوله یعنی اصولش قوی باشه تفسیرش قوی فلسفهش قویه تمام علومش قوی میشه اصول خیلی اهمیت داره منتها به این نهبی که مفیده باید خونده بشه و ما همه مبانی داریم میگیم مبنای مشکلی که نه علم وجدانی قوی از علم غیر اما امارات 70% انشارین ها رو 100% کرده یه چیزایی که ناینی نا بافته و ما داریم ادامه میدیم ولی اونها که به جزم رسیدن به مقام افطار رسیدن اونا یه بوده یه ممداتی بوده یه معداتی بوده ولی ماها نداریم وقتی نداریم وقت بذارید همون آخرین نتیجه که ناینی نا بهش رسیدی شما اولش بهش برسید که اینها رو اگه تفتیز نکنید توش دیر میکنید الان هاشیه ی آغازی عراقی رو و از فواهد اگه نگاه کنید بعضی موقع مسخره کرده مقبل رو و با اخلاق پندی داشته و این در اون تقریراتش در اون تعلیقاتش هم بروز پیدا کرده اومده با از ما خندیده حالا یا به ناینی نا یا به مقدر. اینطوری طوری طور تا تو که بگم نایی هرچی گفته وحیه منزله منر محتمل که درست نباشه و آغازی ها میگیم نا درست نیست یعنی از با هیچ مبنای سازش نداره بخونید و اصلا در جلد چهاران تعلیبات سیاده میگم یعنی اگر از اول اون مسیر فکری ما معلوم نشه ما تا آخر تو اشتباهیم قطع و زن و شرق. زن رو بیاریم در امارات اینطوری این طوری ب خوب تعمل کنید امارات و چیزت داره صد درزن قوی تر از علم وجدانی خود ماست به خاطر که تنها راه وصولت تعبدیات همین روایاته روایاتی که از حاس بین ماست به 70 درصد علم وجدانی من بش 100 درزن مگه ما پیغمبریم بگیم علم ما قوی تر از این روایاته از بلوغ و وصول تنها شرط تنجّز احکام هیچ ارتباطی به مقوله علم نداره اون علمی که داریم بحث میکنیم علم وجدانی ضعیفتر از علم خارجیه لذا در مقام شهادت این علم ضعیف به نمیخوره علم قوی میخواد شما زنا رو دیدی این علم ضعیفه علم قوی علم چهار نفره پر شرایط خاص پس این اشعار باید یه طوری باشه قافیه موزون باشه گیر نکنیم یک بحثی الان بخونیم بعدا این اصلا به درس نخون به این نهبی که شون داره می و دیگران دارن می و تغییرات و اینها میشه یه ده از معلوماتی که نیاز به نوت درست ممارست داره حتما باید در کنار نایی بشینی فوت و فرم فباحت و از این, بگیری. از این کتاب در نمیاد پس این که داریم میگیم آقایم یه مقدار تعمال کنه یه مقدارم اعتماد داشته باشید اینطور نیست که همه حرفایی که دارم میگم خطا باشه راه باز میشه و آفاقی برا ذهن شما باز میشه فکر کنه چیزی که گفتم چشم بسته قبول نکنید به الان نهایتش میرسید به یک مقلد خیلی خوبی هستید در این که در مبانی از آقای قوی دارید می کنید در رجال از ماموانی دارید می کنید در اصول از صاحب کفای دارید تقلید می کنید یه مقلد خیلی خوب و سربزیری میشید آرام هیچ اشکالی نداره هیچ مبنایی به حمدالله نداره به خاطر این که خیلی احترام به مشهور قائله اصلا در مقابل مشهور مبنای اتخاذ نمیکنه. بی ادبی انسان در مقابل مشهور مبنا داشته باشه همین مبانی مشهور نهایتش میدیم نه فهمیدیم، دیگه رو قلم اشکال ندارم حوضه یعنی این یا طلبان کتاب ها رو میخونن برای مبانی خودشون ما چه مبانی مشهور داریم مبانی نائینی آی خویی دیگران به چه درد ما میخوره تحمل کنید تو این بحثا تا اینکه ابهامی در مقام استنباط براتون دست نده و ایل اگه مبهم باشه گیر میفتید انسان در یک مسئله این 4 5 تا قوله، فوهولن هم داره و هر کارو میزنن خودش نمیتونه اتخاذ رأی کنه. ما چی بگیم در مقابل آقای تبریکی مگه حرف داریم؟ اوجه اثبات کرد که 30 سال در مقابل مرحوم آقای تبریکی کسی نتونست حرف بزنه. به خاطر اینکه مغلط بودن. هر چیشون بگه، وحی مندل و اصلا لازم نیست تحمل کنی در اطرافش. برای آره چی تحمل کنیم؟ خب ایشون زحمت کشیده، استفاده کنید. یعنی این, این طوریه واقعا اینها بر خلاف واقعه یه تعمالی بکنید تا ادامه شده <تصفيق> <تصفيق> از اول که روشن می‌گرفتید ما اینقدر اشکال می‌شدن که می‌گفتید شما مثلاً بر خلاف متن کتاب پیدا شما من می‌خوام پروژکت کنم نمی‌خوام بگم فقط خود نمی‌خوام چون شیخ برگشته ظاهر عبارت ظاهر عبارت شما هنوز متوجه نشده بودیم اینکه شما رو اشتباهه به عبارت ما این ذهنم اون گیر کرد یعنی اینجا عبارت داره می‌گه این مطلب بگم که این عبارت ما این عبارت چی It's a